ریچل یک شنبه 18 آگست 2013 صبح زود یه تیکه از خاطر مخور شد به بعد انگار من برای روزها، هفته و ماه ها توی تاریکی را میرفتم و بعد بالاخره یه چیزی رو به چنگ وردم انگار که دستم و به دیوار گرفته باشم تا راهم از یه اتاق با اتاق دیگه پیدا کنم سایه‌های فرار سرانجام به هم آمیختند و بعد از یه مدت چشمان به تاریکی عادت کردن و تونستم ببینم اولش نه گرچه اولش مثل یه خاطره حس میشد اما خیار می‌کردم خواب دیدم من نشستم اینجا رو مبل تقریبا فلج از شوکی که به وارد شده به خودم میگم نباید اولین باری باشه که من چیزی رو فراموش کردم نباید اولین باری باشه که چیزی رو به شکلی تصور کردم که در اصل اونجوری نبوده و در واقعیت جور یه اتفاق افتاده مثل وقتی که با همکارای تام رفته بودیم مهمونی و من خیلی معص شده بودم اما شب خوبی داشتیم یادم کلارا رو برای خدافی بوسیدم کلارا همسر همکارش بود یه زن دوست داشتنی گرم مهربون حرفش یادمه که گفت ما باید همدیگر رو دوباره ببینیم یادم دستمو توی دستش نگه داشته بود اینو خیلی روشن یادمه اما بعدش معلوم شد این خاطره واقعیت نداشته من فردا صبحش فهمیدم این واقعیت نبوده وقتی اومدم با تام حرف بزنم و اون پششو بهم کرد فهمیدم اون موقع فهمیدم چیزی که از دیشب توی خاطرم مونده واقعی نیست چون به هم گفت وقتی کلارا رو متهم کردم که داره بهش نخ چقدر ازم ناامید و معیوس شده گفتش که من عصبی بودم و فوش میدادم وقتی چشامو بستم تونستم دست گرم کلارا رو توی دستام احساس کنم اما باید باور میکردم که این در واقع اتفاق نیفتاده بود چیزی که واقعا اتفاق افتاده بود این بود که تا منو گذاشته بود روی دوشش رو از خونه برده بود بیرون من گریه و داد همش در حالی که کلارا بیچاره توی آشپزخونه از ترس مچاله شده بوده. برابرم وقتی چشمم رو بستم وقتی توی خواب و بیداری فرو رفتم و خودم رو توی زیر پیدا کردم احتمالاً تونستم سرما و بوی موندگی هوای نم گرفته رو حس کنم احتمالاً تونستم طرح اندامی رو که به طرفم میاد ببینم مشت بالا رفته رو اما خیال می‌کردم این تصویری که توی ذهنم حک حق شده حقیقت نداره وحشتی که اون موقع حس کردم واقعی نبوده وقتی که اون سایه کتکم زد و همونجا رو روی زمین ولم کرد و من گریه میکردم و خون ازم می‌ریفته خیال کردم اینم واقعی نبوده موضوع فقط همین بود و حالا حالا اینو دیدم انقدر تکان دهنده است که به زور میتونم باور کنم اما همونجور که با بالا اومدن خورشید مه بهم میره همه چیز برام روشن و شفاف شد چیزی که اون بهم به گفته دروغ بوده من تصور نمیکردم ازم متنفر باشه. اینو یادم نمیاد درست مثل چیزی که برای کلارا یادمه اینکه من بعد از مهمونی باهاش خداحافظی کردم و اون با هم دست داد و دستمو نگه داشت ترسم درست مثل همون ترسیه که خودم رو روی زمین جلوی چوب گلف پیدا کردم و حالا میدونم میدونم میدونم می و مطمئنم که من نبودم که چوب و برداشتم. نمیدونم حالا چی میشه. میدونم بالا شلوار جین و کفش برزشیم و میپوشم و برمیگردم پایین. به شمارهشون زنگ میزنم. به شماره ثابت می و میذارم دوبار زنگ بخره و بعد قطعش میکنم. نمیدونم چی باید باکن. یه قفه درست میکنم و میزارم خنک بشه زنگ میزنم بان ریلی و بد قطعش میکنم اون حرف من رو باور نمیکنه میدونم که باور نمیکنه میرم سمت ایستگاه امروز یک شنبه است و اولین سرویس قطار یکشنبه تا نیم ساعت دیگه نمیاد پس ای ندارم که اینجا روی نیمکت بشینم و هی با خودم مرور کنم هی از اعتقادی به بیامیدی محض برسم و باز برعکس و همینجور هی کلنجار برم با خودم همه چیز دروغه من تصور نمی کردم ازم متنفر باشه تصور نمی کردم به این سرعت از من جدا بشه و مجدش رو برام گره کنه من دیدمش که برگشت داشت داد میزد. دیدمش رفت توی خیابون با یه زن دیدمش توی ماشین با ما اون دیدمش اصلا فکر این رو نمی کردم و بعد فهمیدم که خیلی ساده است خیلی خیلی ساده یادمی که من فقط دو تا خاطره رو با هم دیگه اشتباه کردم من خیال کردم آن ناز که داشت از من دور می با لباس آبی اما توی صحنه دیگه تامو یه زن رو توی ماشین دیدم البته که اون زن لباس آبی نپوشیده بود جین و تیشرت قرمز پوشیده بود اون مکان بود